از جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خرد و سلام افسانه‌های های ملل آینه روح و نماگنده اندیشه و بخش ارزشمندی از فرهنگ عمومی و ادبیات اونهاست در برامی هزار افسان. امشب ای رو از مردمان سرزمین ترکیه براتون نرد میکنم به نام خاله لیلا از کتاب داستانها و افسانه‌های مردم ترکیه گردآوری سوم و ترجمه محمد رضا شمس افثانه های سرزمین ترکیه زیبا و شنیدنی هن و در خونه ها و قهوه خونه ها روایت و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن این شما و این هم افثانه خال لیلا از سرزمین ترکیه در روزگاران قدیم در یکی از شهرهای ترکیه مرد بسیار مؤمنی زندگی کرد که دختر زیبایی به نام بلغیس داشت مرد دخترش رو که تنها یادگار زن خدا بیامرزش بود خیلی دوست داشت بلغیس تمام کارهای خونه رو انجام می‌داد و در پایان هر روز قرآن می‌خوند. اون تمام آیه های قرآن رو از حفظ شده بود و پدرش از این بابت به وجود دخترش افتخار میکرد این مرد هر سال به زیارت خونهٔ خدا میرفت اون سال هم همین خیال رو داشت اما برای بلقیس نگران بود و نمیخواست اون تنها بذاره بالاخره بلقیس رو صدا زد و گفت دخترم تو دیگه به سنی رسیدی که بتونی از خودت مواظبت کنی اگه من مجبور نبودم هیچ وقت تو رو تنها نمیذاشتم بلغیس لبخندی زد و گفت پدرجان نگران من نباش بلغیس. پدر سریع داد و گفت دخترم از تو میخوام که بعد از رفتن من دو چیز رو رعایت کنی بلغیس با تعجب پرسید دو چیز؟ چه چیزایی پدر؟ پدر مکسی کرد و گفت اول اینکه حتی برای رفتن به بازار و خرید هم از خونه خارج نشی چون من هر چیزی که تو ممکنه نیاز داشته باشی برات طیه کردم دیگه اینکه در خونه رو روی هیچکس باز نکنی بعد کنن به بلغیس گفت دخترم قرمیدی این دو چیز رو رعایت کنی بالغیس قول داد که سفارش های پدر رو اجرا کنه و پدر با خیال راحت آماده سفر مکه شد بعد از رفتن پدر به مکه بلغیس روزهای زیادی رو به تنهایی گذرند و هیچ وقت از خونه خارج نشد فقط گاهی تا چاه آبی که پشت باغشون بود میرفت و از اون آب میکشید بلغیس سنگ بزرگی به سطل خودش بسته بود تا سطل پر از آب بشه روزی از روزها بلغیس که سطل رو پایین چاه فرستاد سنگ به دیوار چاه خورد و اونو سوراخ کرد. سوراخ به قدری بزرگ و گشاد بود که بلقیس به میتونست همه چیز رو از داخل اون ببینه. جلوی چشای بلقیس باغی زیبا بود با درختهای بلند. درختهایی که های رسیده و آبدارون از شاخه‌ها آویزون بود. بوتهای گلهای زیبا و رنگارنگ در هر گوشه باغ رویده بود. بلغیس مبه و تماشای باغ شد. استخری وسط باغ بود که دو نفر کنار اون نشسته بودن. یکی از اون دو نفر شاهزاده و دیگری شاهزاده خانم بود. در همین موقع خدمتکاری با یه سینی شربت به اونون نزدیک شد. شاهزاده لیوان شربت رو برداشت و اونو مزمزه کرد و نوشید اما یه دفعه روی زمین افتاد و از خانم تقاضای کمک کرد کمک کمک خوهر, کمک کمکم کن کمک شاهزاد خانم سراسیمه به این طرف و اون طرف دوید و فریاد زد کمک کمک کمک کمک باغبونی که در اون نزدیکی مشغول کار بود خودش رو به اونها رسونده پرسید شاهزاده خانم برای برادرتون مشکلی پیش اومده؟ اما شاهزاده خانم به جای جواب دادن از دیدن سیویل باغبون به خنده افتاد و شروع کرد به خندیدن حالا نخند کی بخند اونقدر خندید و خندید که نزی بود از خنده رود پر بشه بلغیس که شاهد این صحنه بود با نگرانی و تعجب به شاهزاد خانم خیلی مونده و خودش گفت چرا این شاهزاده خانم برای نجات برادرش کاری نمیکنه آخه الان چه وقت خندیدنه شاهزاده همچنان از شاهزاده خانم کمک میخواست کمک خواهر کمکم کن خواهش میکنم خواهش میکنم دارم از اوش میرم و چند لحظه بعد شاهزاده از هوش اما شاهزاده خانم همچنان داشت میخندید بلغیس طاقت نیاورد و یه میوه به از درخت باغ خودش چید و به طرف پیشونی شاهزاده خانم پرد کرد میوه به شاهزاده خانم خورد و اون از درد فریاد کشید و با این فریاد شاهزاده به خوش اومد و چند لحظه بعد حال شاهزاده خوب شد پا شد و نشست باغمون هم از ترس مجازات به سرعت محل حادثه را ترک کرد شاهزاده وقتی حالش خوب شد از شاهزاده خانم پرسید آخ خوهر چه اتفاقی افتاده؟ کی منو نجات داد؟ ها تو؟ شاهزاده خانم همه چیز رو برای برادرش تعریف کرد شاهزاده چند تا از نگهبانها رو احضار کرد و به اونها گفت شما باید هرچه زودتر صاحب باقی رو که این میوه به, به از درختهای اون چیده شده اونها رو پیدا کنیم نگه بانها عدای احترام کردن و به شهر رفتن و از مردم کوچو و بازار پرسجو کردند تا اینکه پیرمردی پیره گفت فقط باغ پدر بلغیس چون این بهی داره که اونم اینجا نیست و به زیارت خوره خدا رفته دخترش بلغیس توی خونه است اما اما اون در رو به روی هیچ کس باز نمیکنه. نگهبانها این خبر رو به شاهزاده رسوندن شاهزاده با خودش گفت من باید این دختر شجاع رو ببینم آه، اون باید خیلی زیبا و پاک من باشه که سه زندگی منو نجات بده من من باید هر چوری شده اونو از نزدیک ببینم ولی چجوری اون که در رو به هیچکس کس باز نمیکنه. خلاصه شاهزاده اون قدر فیک کرد و فیک کرد تو نقشه‌ای به ذهنت رسید. لباس زنه پوشید به در خونه بلغیس رفت و در زد بلغیس از داخل خونه گفت کیه؟ من نمیتونم در رو به روی کسی باز کنم تو کی هستی؟ شاهزاده جوون صداش رو مثل پیر کرد و گفت بلغیس عزیز میدونم که پدرت به مکه رفته من لیلا هستم دوست قدیمی مادر خدا بیا مرزت از راه دوری برای دیدن تو به اینجا اومدم حالا عزیزم نمیخوای در رو باز کنی و منو به خونه راه بدی بلقیس در رو باز کرد شاهزاده یا همون لیلا وارد خونه شد و با دیدن بلقیس با خودش گفت خدای من چقدر سیبا و مأسومه معلوم خیلی نجیب و مؤمنه بعد رویکرد کرد به بالغیس و گفت دخترم من وقت تو رو نمیگیرم کمی با هم صحبت میکنیم و بعد من از اینجا میرم آه نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم بالغیس برای مهمونش قهوه آورد بعد از اون پرسید خالهجان چرا من تا حال شما رو ندیدم؟ شاهزاده یا همون لیلا جواب داد دخترم من سالها قبل از این شهر رفتم و مدت هاست که از اینجا دورم وقتی شنیدم که مادرت فوت کرده و تو از این بابت سخت دلتنگی سعی کردم در اولین فرصت خودم رو به تو برسونم خواب حالا حالا برام حرف بزن بگو چیکار میخوانی چیکار کردی یا؟ بلغیس با شور و حیجان گفت خاله لیلا میدونی من یه روزی شهزاد خانومی رو با یه میوه زدم شاهزاده یا همون خاله لیلا پرسید چرا این کاری کردی دخترم؟ بلغیس با حوصله تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد و گفت خاله لیلا شاهزاده قش کرده بود ولی شاهزاده خانم به جای کمک کردن به اون فقط به سیبیل باقبون میخندید منم که نمیتونستم بذارم اون جوون به همین سادگی طرف بشه ها؟ شاهزاده یا همون خاله لیلا به آرومی گفت بله دختر جان بله حق با توه شاهزاده خانوم باید تنبیه بشه حالا اگه اجازه بدی برگردم دوباره فردا به دیدنت میاد به با خوشحالی گفت باشه باشه خاله جان من از صحبت کردم با شما خیلی لذت بردم فردا منتظرتون هستم شاهزاده به قول خودش ففا کرد اون هر روز بعد از ظهر به ملاقات بلغیس میومد و ساعت با هم گفتگو می و پدر بلغیس از زیارت خونه خدا بازگشت سر را نرسیده به شهر وارد خونه ای شد تا کمی استراحت کنه هنوز روی صندلی کاملا جا به جا نشده بود که قاصدی به اون نزدیک شده گفت شاهزاده ماگر شما رو ملاقات کنه پدر بلغیس از شنیدن این حرف متعجب شد با خودش گفت یعنی شاهزاده با من چیکار داره فکر پدر بلغیس هزار راه رفت و بالاخره خودشو به شاهزاده رسوند شاهزاده به گرمی از اون استقبال کرد و گفت سلام, سلام پدرجان امیدوارم زیارت شما مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه من درخواستی از شما دارم پدر بلغیس با تعجب پرسید درخواست؟ از من چه درخواستی دارید قربان؟ شاهزاده مکسی کرد و سرش رو پایین انداخت و گفت من من با ارزشترین هدیه روی زمین رو از شما میخوام من قصد دارم با دختر شما ازدواج کنم آیا به این وصلت راضی هستید؟ پدر بلغیس که انتظار شنیدن چون این حرفی رو نداشت با خوشحالی جواب داد با کمال افتخار میپذیرم امیدوارم این ازدواج مبارک باشه قربان بعد پدر بلغیس از شاهزاده اجازه خواست تا هرچی زودتر به خونش بره و این خبر خوش رو به دخترش بلغیس بده پدر بلغیس با عجله به خونش رفت و با خوشحالی به دخترش گفت دخترم دخترم شاهزاده میخواد با تو ازدواج کنه بلغیس ناباورانه با خودش گفت شاهزاده از من خستگاری کرده؟ یعنی من میخوام با شاهزاده که این سرزمین ازدواج کنم؟ بعد با خوشحالی به پدرش گفت پدرجان تو تو به این وصلت راضی هستی نه؟ پدر خندید و گفت البته دخترم البته همه دخترای این سرزمین آرزو دارن زن شاهزاده بشن حالا این شانس نصیب تو شده این جای شکر و خوشحالی داره چرا رازی نباشم دخترم خدا رو شکر بلغیس زیر لب گفت خدایا شکر شکرت که دعای منو اجابت کردی. تو تو خیلی مهربونی خدا جون. من من باید این خبر خوش رو به خال لیلا بگم. آره، باید بهش بگم. خدایا شکرت، شکر. غروب خاله لیلا یا همون شاهزاده در خونه بلغیس رو به صدا در آورد بلغیس با خوشحالی و حیجان در رو باز کرد و گفت خاله خاله من امروز خیلی خوشحالم خاله جون چون شاهزاده میخواد با من ازدواج کنه خاله خاله. شاهزاده که همون خاله لیلا بود با اون حالت خوشحالی که فقط یه خاله واقعی میتونه داشته باشه و با صدایی که پدر بلغیس هم بشنبه گفت واقعا که خبر خوبی بود تو باید موافقت خودت رو با این ازدواج اعلام کنی دخترم شاهزاده اینو گفت و چند دقیقه بعد از اونجا رفت و قول داد که دوباره به دیدن بلغیس بیاد فردای اون روز طبق رسم مردمان اون سرزمین پدر بالغیس هدیه‌ای برای شاهزاده فرستاد این کار یعنی اینکه اونا به این وسعت رضایت دارن چند روز بعد مراسم نامزدی شاهزاده و بلغیس برگزار شد خاله لیلا یا همون شاهزاده هم هر روز بعد از ظهر به دیدن بلغیس میومد. اینکه روز جشن عروسی نزدیک شد بلغیس به خاله لیلا گفت خاله جان میشه ازت خواهش کنم این چند روزی که به عروسی مونده پیش بمونی من به شما احتیاج دارم خاله لیلا یعنی همون شاهزاده گفت دختر جان من یکمی کمی کار دارم ولی ار روز سعی میکنم به دیدنت بیام و اگه کاری داشتی برات انجام بدم خلاصه روز عروسی فرا رسید خاله لیلا در روز کنار بلغیس بود و به اون در پختن غذا کمک میکرد که یه دفعه فریاد کشید آه آه آخ بلغیس من دستم رو بریدم باید فوراً برگردم خونم و دستم رو ببندم و لباسم رو عوض کنم آخ دستم بلغیس گفت نه جان لازم نیست این همه راه بری من خودم دستت رو میمندم بعد با یه دستمال ابریشمی دست خاله لیلا یا همون شاهزاده رو بست خاله لیلا یا همون شاهزاده مجبور بود باز همونجا بمونه تا مراسم عروسی شروع بشه. مردم دسته دسته برای مراسم عروسی شاهزاده می اومدن. شاهزاده در یک فرصت مناسب خودش رو به قصر رسوند. در طول جشن و مراسم، بلغیس هیچ کجا خال لیلا رو ندید و از این بابت خیلی ناراحت شد. اون نمیدونست که چرا خال لیلا مراسم رو ترک کرده. بلغیس خودش رو به اتاقی که شاهزاده در اونجا بود رسوند و با گریه گفت کاش کاش لیله هم اینجا بود در این موقع صدایی گفت بلغیس جان من اینجا در کنار تو هم بلغیس مات و مپوت موند اون صدا صدای خاله لیلا بود ولی از خاله لیلا خبری نبود و شاهزاده در کنارش ایستاده بود. بلغیس با تعجب به شاهزاده نگاه کرد و گفت: این, این, این, این صدای خاله لیلا بود ولی شاهزاده كلام اون رو قطع کرد و گفت: بلغیس عزیزم من من همون خاله لیلام از وقتی که تو منو از مرگ نجات دادی من با تو بودم. خاله لیلایی در کار نیست من همون خاله لیلام و همیشه در کنار تو هستم تو باید از این به بعد خاله لیلا رو فراموش کنی و در عوض من همیشه در کنارتم دلقیس این بار از خوشحالی گریه کرد از اینکه خاله لیلا رو از دست داده بود ناراحت بود ولی از اینکه شاهزاده در کنارش بود خیلی خوشحال از اون روز به بعد بلغیس و شاهزاده سالهای سال در سرزمین ترکیه با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کرد که براتون نهر کردم افثانهی بود از سرزمین ترکیه به نام خاله لیلا به نقل از کتاب داستانها و افسانه های مردم ترکیه به گردآوری سونت و ترجمه محمد رزا شمس هر افسانه حامل پیامیه و حرفی برای شنوندگان و خانندگانش داره و هدف مادر برامی هزار افسان کسب گوشه از حقایق پنهان در پس روایت های ساده و دلنشین و ابراانگیزه گنجنی ارزشمند ادبیات شفاهی مردمان مختلف به ویژه ادبیات غنی و فرهنگ سرزمین عزیزمون ایران رو پاس بداریم. هزار افثان کار است از نویسنده و سردبیر زینت سالفور ویراستار سید فری نوربخش اجرا مهران دوستی صدابردار حامد ملاکرومی تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود